کتاب افسانه ها و قصه های ملل داستان هایی برای نوجوانان ترجمه دکتر محمد مهدی پور کریم. به سفارش کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت آقای محمد جواد بوستانی خانش توسط برفشه این داستان جام طلا میگن در زمانهای خیلی قدیم حاکمی بود به نام سندخان. این خان روزی در صدت شد که همراه اهالی شهر به سرزمین دیهی مسافرت کنه و به جاهایی بره که چراگاه های فراوونی داشته باشه و به آسونی بشه اونجاها زندگی کرد. اما جادی که خان و همراهانش انتخاب کرده بودن خیلی طولانی و دشوار بود. بنابراین قبل از حرکت دستور داد که همه ی رو بکشن، چون عقیده داشت پیرمردها توی راه ناراحتی ایجاد میکنند و نمی‌تونن پا به پای جوونا حرکت کنن پس هیچ پیرمردی نباید زنده بمونه و هرکس دستورش را انجام نمیداد به سختی مجازات میشد. در میان طرفداران خان جوونی بود به اسم تزیران که حاضر نشد دستور خان را انجام بده و پدر پیرش رو بکشه با اجازه پدر تصمیم گرفت که او را در میان یک کیسه بزرگ چرمی مخفی کنه و بی سر و صدا بدون اطلاع خان همراه سایر افراد قبیله به راه بیافتند سند خان با جمعیت و گله های خودش به راه افتاد و مسیرش را از جنوب به شمال برای رسیدن به سرزمین دوردست ادامه داد پدر تزیران پشت اسبی توی یک کیسه بزرگ چرمی دور از چشم بقیه افراد استراحت میکرد و قایم شده بود. تزیران یواشکی پدرش رو غذا میداد و وقتی که وای میسادن اگه هوا تاریک بود سر کیسه رو باز میکرد تا پیرمد از کیسه خارج بشه و استراحت کنه و خستگی خودش رفت کنه. کاروان اونا مدتی راه رفتند و به کنار دریای بزرگی رسیدند. اونجا سند خان دستور داد توقف کنند. یکی از طرفداران خان کنار دریا اومد و دید که در ته دریا یه چیز نورانی و درخشانی میبینه. بعد از دقت زیاد متوجه شد که اون شیء جام بزرگی از تلا و یه شکل عجیبی داره. بلافاصله فاصله پیش خان برگشت و بهش گفت ته دریا نزدیک ساحل یه جام طلایی پرارزشی دیدم. سندخان خان دستور داد که جام رو برای او بیارن اما هیچکس حاضر نشد جونشو به خطر بندازه و به قعر دریا بره ناچار خان گفت قرعه بکشن و قرعه به اسم هر کی افتاد اون فرد باید بره ته دریا و جام رو برداره و بیاره قرعه به نام یکی از طرفداران خان افتاد او بین آب رفت اما نتونست دوباره برگرده یه قرعه دیگه انداختن به اسم شخص دیگه ای خورد او هم از روی شیب ساحل به وسط آب پرید و مدتی گذشت و دیگه ازش خبری نشد به همین ترتیب ادهی از طرفداران سندخان جون خودشونو به خطر انداختند اما خان حاضر نبود از تصمیم خودش صرف نظر کنه این دفعه نوبت به تذیران جوان رسید او پیش پدرش اومد و باش خدافزی کرد و گفت خدا حافظ پدرجان ما هر دو نفر جون خودمون رو از دست میدیم هم من هم تو پیرمرد پرسید منظورتو نمیفهمم چرا تو باید از بین بری تذیران توضیح داد که قرعه قواسی در دریا به اسم او افتاده و باید بره در اعماق دریا و جام طلایی را برای شاه بیاره پسر جوان در حالی که صحبت خودش را تمام کرد گفت هیچ کسی تا حالا از دریا برنگشته منم طبق دستور خان به ته دریا میرم و جون خودم رو از دست میدم. بعد از مرگ من خدمتگزاران خان حتما تو رو پیدا میکنن و تو رو هم هلاک میکنن. پیرمرد وقتی حرفش حرفشو شنید گفت: "آها، به این ترتیب همه افراد از بین میرن ولی جام طلا هم به دست نمیاد. حالا این کوه روبرو رو که از وسط دریا در اومده و فاصلشم هم از ساحل زیاد نیست میبینی؟" جام طلا در قله این کوه قرار داره. اینه که فکر میکنن جام ته دریاست اشتباه میکنن. فقط تصویرشه که توی دریا منعکس شده. تعجب میکنم چطور نتونستن این موضوع رو حدس بزنن. تزیران پرسید: خب پدر حالا باید چکار کنم؟ باید بری بالای این کوه و جام رو ورداری بیاری. به دست آوردنش زیاد مشکل نیست. جام انقدر می‌درخشه که همه فکر می‌کنن محلش خیلی دوره اما جام طلا روی یک تخت سنگ غیر قابل عبوره که به زحمت میشه بالاش رفت بنابراین باید راهی رو بهت پیشنهاد کنم که بری و مدتی منتظر بشی تا آهوهای زیادی روی تخت سنگ جمع بشن بعد اونا رو بترسون آهوها فرار می‌کنن و جام رو بر تو هم نباید وقت خودت رو از دست بدی فورا اونو بردار و حرکت کن و الا ممکنه بره و جای دیگه ای سقوط کنه و بیفته. تزیران به طرف کوه رفت و به زحمت اونو طی کرد. از وسط علف ها و درخت ها و سنگ تیز آبور کرد و صورت و دست و پاهاش خراش برداشت و لباساش پاره شد. اما به هر ترتیبی بود رسید بالای یه کوه و دید که محل جام خیلی دوره. و روی یه سنگ غیر قابل عبور قرار داره که به سادگی نمیشه به دستش آورد. تزیران میدونست از که نمیتونه به اون سنگ برسه. بعد طبق سفارش پدرش یه مدت منتظر موند. آهوهای زیادی روی تخت سنگ جمع شدند و مدتی آروم و بی حرکت اونجا قرار گرفتن و داشتن پایین و نگاه میکردند. تزیران جیغ بلندی کشید و اون حیوانا، دیوانوار از روی تخت سنگ جست زدن و جام طلا برگشت و به پایین لغزید مرد جوان خوشحال شد و دوید اونو برداشت و بین دوتا دست خودش گرفت و از کوه پایین اومد اومد پیش خان و جام رو بهش داد خان پرسید چطور تونستی این جام رو در قره دریا به دست بیاری؟ تزیران جواب داد من که به ته دریا نرفتم اونو از قلی کوه به دست آوردم در دریا فقط تصویر جام بود تصویر جام توی دریا منعکس شده بود ولی جام اصلی روی قله کوه بود خان پرسید این موضوع رو کی به حتیات داد؟ مرد جوان گفت من خودم اونو بینی کردم خان بیشتر از این چیزی نپرسید و او را به حال خودش گذاشت روز بعد سند خان و تمام همراهانش به راه خودشون ادامه دادند مدتها راه رفتند تا به یه بیابون خیلی وسیع رسیدند. هوا خیلی گرم شده بود و همه علف ها و گیاهان اون بیابون بر اثر بیابی خشک شده بودند. در اونجا هیچ رودخونه یا جویبار یا آبراهه دیده نمیشد، تمام افراد تشنه شده بودند و ناراحت به نظر می رسیدند. های خان هر طرف میرفتند و میخواستن آب تهیه کنند ولی هیچ جا آب نبود. همه اونا توی یه زمین خشک و سوزان قرار داشتند و نمیدونستند چه کار باید بکنند بعد تزیران پیش پدرش رفت و گفت پدر تو میدونی چه کار باید بکنیم؟ همه افراد از تشنگی دارن حلاک میشن پیرمرد کمی فکر کرد و گفت یه گاوه ماده سه ساله بردار و بزار فرار کنه این گاو هر جا رسید و زمین رو بو کرد همونجا رو بکن بلا فاصله به آب میرسی تزیران یک گاو مادر رو وادار کرد که فرار کنه و او رو تقیب کرد گاو در حالی که سرش پایین بود از هر طرف میدوید تزیرانم به دنبالش بالاخره یه جایی ایستاد و شروع کرد به بو کردن زمین سوزان رو بو کرد مرد جوان فریاد زد همین نقطه زمین رو بکنید اشخاص به کندن زمین پرداختند ناگهان به یه چشمه زیرزمینی رسیدند آب سرد و خالص از اون فوران کرد و روی زمین جاری شد همه افراد به مقدار زیاد از اون آب خوردند مقداری رو هم ذخیره کردند به این ترتیب قدرت خودشون رو به دست آوردند دستور داد تا تزیران را حاضر کنند و ازش پرسید چطور تونستی چون این چشمه ای رو در زیر این سرزمین سوزان حدس بزنی؟ تزیران گفت با نشانه هایی که دستم بود تونستم اونو پیدا کنم. همه افراد از اون آب نوشیدند و به استراحت پرداختند. دوباره به راه خودشون ادامه دادند. مدتی راه رفتند، بالاخره در جایی توقف کردند. اون شب بارون خیلی شدیدی اومد و تمام آتیش رو خاموش کرد. خیلی تلاش کردند ولی نتونستن آتیش رو روشن کنند. همه افراد میل ارزیدن و به خاطر بارون خیس شده بودند و چه کار کنند. بالاخره یکی از افراد قبیله شعله آتیشی بالای یک کوه دید. سندخان فوری دستور داد که به طرف کوه حرکت کنند و اون آتیش رو بیارن. طرفدارای خان برای اجرای دستور خان عجله کردند و یکی بعد از دیگری به اون کوه نزدیک شدند و بالا رفتند. آتیش زیادی زیر یکی از درختها دیدند. کنار اون یه شکارچی خودش رو گرم می کرد. اونا مقدار زیادی از چوبای نیم سخته رو از اونجا برداشتند ولی نتونستن اونا رو با خودشون بیارن به اردوگاه چون چوب‌های نیم سوخته آتش آتیش بلا زیر بارون خیس می شدن و خاموش می شدن و زحمتشون به هدر میرفت. سندخان خشمناک شد و دستور داد همه ی کسایی که برای آوردن آتیش رفتن ولی نتونستن اونو بیارن مجازات بشن. بعد نوبت به تزیران رسید. او پیش پدرش رفت و پرسید حالا چه کار باید بکنم؟ چطوری باید آتیش رو از روی کوه تا اردوگاه حمل کنم؟ پیرمرد گفت سعی کن چوبای سوزان و شعلور برد نداری چون بین راه خاموش میشه و بارون اونا رو خیست میکنه. یه کوزه خیلی بزرگ بردار و اونو پر از آتیش کن بعد میتونی آتیش دلخواه خودت رو بیاری به اردوگاه پسر جوان هرچی پدرش گفته بود انجام داد کوزه ای رو پر از آتیش کرد و از کوه پایین اومد به این ترتیب همه افراد تونستن آتیش زیادی تهیه کنن و خودشونو گرم کنن و لباساشون رو خوش کنن و غذا بپزن و سیر بشن خان وقتی متوجه شد آتیش رو چه کسی تهیه کرده فورا دستور داد که تزیران رو پیش خودش حاضر کنند وقتی مرد جوان اونجا رسید سندخان فریاد زد و با ناراحتی پرسید با اینکه این مسئله رو میدونستی که چطوری باید آتیش آورده بشه چرا این موضوع رو به کسی نگفتی و یادآوری نکردی که باید آتیش بره تو کوزه تزیران جواب داد منم راهشو نمیدونستم خان در حالی که سعی میکرد به اسرار اون مرد جوان پی ببره گفت: "پس چطور اونو فهمیدی؟" خان دوباره سوالات ای کرد و تزیران ناچار شد اقرار کنه که اون راهنماییهای پدرش رو به کار بسته و به کمک پدرش بوده که تونسته راه های خوب ارائه بده. خان پرسید: "حالا پدرت کجاست؟" تزیران گفت: "همراه منه." اونو توی یک کیسه بزرگ چرمی مخفی کردم. خوان دستور داد پیرمرد رو حاضر کنند. بعد بهش گفت: از همین حالا دستور خودم و تغییر میدم. پیرمرها به هیچ وجه مزاحم جوونا نیستن. اشخاص پیر کاملا از عقل برخوردارن و پیرها هستند که میتونن راه را به جوونا نشون بدن. پیرمرد تو نباید مخفی بشی تو میتونی به همراه بقیه افراد قبیله آزادانه با ما حرکت کنی و هیچ ترسیم به خودت راه ندی پایان